عالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما علي أمير المؤمنين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم شتت جمع المنافقين وعداء الدين وقضث الرعب في قلوبهم مجعلهم كأثمن ماكول ان شاء الله تعالى توفيقي است که نصیب ما شده مشرف به زیارت شما عزیزان و سربازان حضرت بقيه الله الاعظم حجت ابن حسن العسكري سلام الله و سلام علیه بش <تصفيق> و بنده خودم را ارز نمی کنم در رابطه با شما ارز می کنم. افتخار کنید که منتبه به فرموننده هستید که خلاصه خلقت عالم وجود است و اینکه مخصوصا در ایام ولادت با سعادت آن بزرگوار این اضافه را این انتصاب را افتخار کنید و شکرگزار اون باشید و مشکلاتی که در راستای این انتصاب تحمل میکنید و تحمل کرده در طول تاریخ ارزش بیش از اینها را دارد هر کجا یوسف روخی باشد شما ما جنت از ارچه بود او قعر در قعر چاه که البته قهر هم نیست الحمدلله خدای تعالی به برکت وجود ایشون و انایت ایشون و نماینده بر حق ایشون حضرت امام خامنی سلام الله علیه حالا علی رغم همه مشکلات و همه گرفتاری‌ها در از نظر روحی و از نظر اراده و قدرت برای اون کسانی که در این زمینه و در این پادگان پای اند و افتخار و حضور رو دارند به عنوان یک سرباز پابرهکابند و آماده به خدمت خب من به صورت نمیخوام نه منطق هستم نه سخنور بدان معنا به عنوان یک طلبه کوچک یک گزارشی از درس و منهج حضرت و استاد حوض الله تبارک و تعالی برای شما ارز کنم که از نکاتی را که آموزنده است استفاده کنید به صورت خیلی خودمونی با شما صحبت میکنم و بدون تکلف انشاءالله رو بر این دارم و تا ببینیم چه پیش آید خب آشنایی علمی با ایشان را عرض می کنم. در سال و معرفت سیاسی و معرفت های دیگه بوده بالاخره به با قول معروف از یک طرف من هم زادگاه من مشهد بوده من مشهدی هم هستم از یک طرف هم ما همه جایی هستیم هم نجفی هستیم هم مشهدی هستیم هم قومی هستیم من همه جایی هستیم هم گیلانی هستیم و التیفات نمیدید. <تصفح> طور ب یه اعتبارم بله. الله. <تصفح> در سال 1376 بود که التیفات نمیدید. پژوهش کرده امام خمینی که انقلاب اسلامی و امام خمینی در تهران من رو دعوت کردند برای تدریس در پژوهش کرده که ما هاشت در احمدهای خمینی پای گزاری دو دیگه عمرش وفا نکرد و رحمد و خدا را خب همون معسسه امام اون رو ادامه دادم و اونجا من رو برای تدریس دعوت کردم خب اونجا برکاتی داشت یکی برکاتی یک از برکاتش ایجاد ارتباط با جامعه دانشگاهی و دانشجویی و خدمت با محیط دانشگاه و اساتید و اینا و یکی از برکات و شاید عمده ترین برکتش این نکته است که با هم ارز که اتفاقا همون آغاز پاییز همون سال یک حالا به چه مناسبتی آدم نیست که بیشای جناب آقای حجازی صلی اللہ حضرت حجت الاسلام و حجازی که در دفتر آقا هستن بسیار انسان است که حمد شما هر در پشت جبه مو که اهل جبه نبودیم آشنایی ما بایشون با در پشت جبه در احواز الگواز ما میدید وقتی که برای تبلیغات میفرستاد ما رو حوزه اونجا با هم آشنا شدیم و ارتباط داشتیم و خلاصه به مناسبتی نمیدونم چه مناسبتی بود من دفتر آقا رفته بودم ایشون به بنده گفتن که آقا دو سه روز درسه درس شروع کردن و صبحا ف... ساعت مثلا فرق فرمید هفت است و هشت خب ما دیدیم که هفته دو روز حالا می ارز میکنم که هفته سه روزیشون درست میپرموندن یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه و من همه از قوم روز یک شنبه و دو شنبه می برای پژوهش کده دیدم خب بالاخره دو روزم مختنم است و ساعتشم میخوره و نزدیک هم از پجوهش تقریبا نزدیک بود با فاسده بفرمایی 500-600 متر یا بیشتر مثلا که پیاده میتونستم برم بعد رفتم شرکت کردم در اون درس و اون ظاهرا جلسه دوم بود البته ایشون در سفقه زمان مقام رهبریشون رو قبل از این که ارز میکنم در رابطه با جهاد که همین رسائل سلاثهای که چاپ شده حتما ملاحظه فرمودید که کتاب بسیار متقنی است اول اون درس رو شروع کردن اما این درس آغاز بحث قصاص بود قصاص از آغاز سال تحصیلی بود حالا جالب از این نکته بگم بگم درش انایتی هست خاطر اون انایتش دارم عرض میکنم همون شب روز اولی که میخواستم مشرف بشم به درس ایشون اون شب خواب دیدم من حالا نمیخوام بخواهم قرائن رو چیزه کنم همه اون خواب رو هم نقل نمی کنم بعضش رو خ تا, تا اون وقتهم حالا خواب دیدم که خدمت شما هر بود که خدمت آیت الله اعظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه رسیدم خب بنده ندن من احتیاج میکنه التماس مابودید در ایشون درک کرده میشین در ردیفه شاگرد اساتید ما که مقام مؤذر رهبری جزء اساتید ما هستند و افتخار داریم اینها جزء تلامذه خدمت و مرمای توتلای بروزیدی بودن تازه مثل رهبر رهبر انقلاب اینها جزء اساغر طلاب بودن یعنی از جوان ها بودند و از اونشون از رده طبقاتی خب تقریبا دو نسل از بنده مقدم بود خواب دیدم که در خدمت آیت الله عزمان برو جدی رفتم و باران شدیدی داره میاد باران شدیدی داره میاد حالا بقیه خواب رو به خاطر یه جهاتی نقل نمی کنم خب این خواب از این خواب خوب خوابیدم نصف شب و این و ساعت این بعدم ازان شد و نماز خوندم و ساعت این غافل شدم از این خواب از این خواب یه غافل شدم توجه به خواب نداشتم دیگه و پاییز بود آغاز پاییز بود دیگه سال تحصیلی بارون بارونم نیمده بود وارد بیت که شدم دم حسینیه اون وقت حالا این جاکفشی ها و این که الان اگر مشرف شدید به این صورت نبود دیگه گیلیمی انداخته بودن کفش ها رو همون بیرون در فضای باز جلوی چیز من بر میداشیم میداشیم توی جا کفشی بعد وارد میشید همین که شدم که کفش ها رو بردارم کفش ها رو بردارم دست من خیز شد یه دفعه ملتفیش شدم دارم داره بارون میاد همون آن التفاید ما میدید بارون قطرات و بارون بارید روی دست من اه. همون جمعه انتقلی شدم به اون خواب التفاید ما میدید این ارتباطشو میخواهم اونجا که چیز عجیبیه که مثلا فرموند. تا اون وقت باران نیمده بود همین دوله شدم که کپش رو بردارم الگوان دارم دستم خیز شد دیگه میخواهم دارد باران شروع کرد باریدن خب این رو هم به فال نیک،, نیک گرفتم گفتم که این همون بروی است چون که واقعا یکی اگر کسی شخصیت مرحوم های طلاعی بروی جردی رو خانده باشد واقعا حسرت میخوره که خدمت شما چطور مثلا فرمایید ای کاش مثلا فرض کن استاد اینچنینی پیدا بشه که انسان محذرش درد کنه. حالا با مناسبت میخوام ارز کنم از کلام و یا جهر کلام از مرحوم امام نرخ میکردن مشایخ ما که مرحوم آیت الله و به قدری درسیشون مشتهد پرور بود که افراد مشتهد میشدن اوتوماتیکی به حساب تحبیر بنده خودشون نمی نمیشدن که مشتهد شدن اینقدر مشتهد پرور بود قابلیت این درس رو داشت خدایسا یکی از آرزوهای ما این بود که یعنی حسرت ها آرزو که جا نداره که حسرت این بود که مثلا فرق کن حالا ما خدمت یه همچه استادی که خدمت جامع باشد و هدمت شما از حال نیدوکاتی رو که در رابطه با آهام عرض میکنم هست که بهداخره ایشون چون اساتید مختلفی دیده این دیدن اساتید مختلف و متنوع خیلی مهمه علمان اساتیدی که در قوم چه در قوم چه در مشهد و مشایخی رو که دیده علمان اینا معثیره بهداخره به سبک و روش های مختلف فقیه اصولی رجالی الجواب کلامی الجواب نه هر کدومی در خصوص گاهی وقتا صاحب مکتبی هستند مدرسه هستند روشی دارن و بعد اثر می‌ذاره وقتی طرف خودشم هم توانمند بشه و قابلیت داشته باشه خیلی موثره خب خدای تعالی این رو اون حسرت ما را به وسیله اینکه نصیب ما شد که بالاخره به بعض از تلامزه ایشون که بلاخره بهرهی بردن از مرحوم آیت الله و ازمایی ما توفیق داشته باشیم که محضر اون بزرگواران رو درک کنیم که یکی از اونها و که الان شاخص آنهاست در عصر حاضر و در زمان ما بالفعل حضرت آقا هستند خب من الان مختصری میخوام بگم یه مختصری شمهی نه فرصت هست نه خدمت شما عرض شود که میشود گنجایش برد در سبو ممکن نیست الوادوان بیدید نمیتونه انسان خدمت دریا رو در یک کوزه جمع کنه شمهی از ایشون رو نمن نقل میکنم یه پرده مختصری خب اولا واقعا یه چیزی که برای من اعجاب برانگیز بود این است که ایشون با این بار مسئولیت بار مسئولیت سنگین رهبری شوخی نیست الیواظ ما بید رهبری یک کشور خانواده مثل ایران با این همه تنوع و خدمت شما اختلافات عقید و های سیاسی و دشمنی ها و خدمت شما گروهک ها و داخل و خارج و بساطه اضافه بر این رهبری جهان اسلام اضافه بر این جنبه مرجعیت که <تصفح> بالاخره بالاخره ایشون قصدی مرجعیت هم هستند و شدند و ازباد ما اینها بار بسیار سنگینی واقعه مطلب من اگر خدمت شما عرض بد که عشق بار مسئولیتی ایشون رو داشتم حتما دفتر و کتاب رو میبوستیدم میذاشتم کنار حالا یا به چیز بسیار بسیطی بسنده میکنم حالا من به مناسبت میخوام ارز کنم که بعضی از نکات دقیق و تحقیقیشون که ببینید ایشون زمان میذاشت فرصت میذاشت از وقت خودش هزینه میکرد همچنانی که در سایر جنبه های دیگر هزینه میذاه که با باید هزینه بذاره از وقتش از فکرش و اندیش و برای مدیریت جامعه چه داخل چه خارج برای همین جنبه علمی هم هزینه میذاشت و سنگ تمام و این خودش به نظر من یه چه خارج بینی و ببینم ندارم از اون از باب تملق چون که یا این حرفا نیست این من میگم یه توفیقی جز تسدید الهی نمیشه نمیشه چون در همون بعدش هم با با تسدید الهی باشید اون بعدش هم تسدید الهی نمیشه ذالک فضل الله یاتی من یشاء حالا آره هر کی بگه اینم خدمت شما عرض که حال خدای تعالی میده به وقت برکت میده به ذهن برکت میده به فکر و اندیشه برکت میده به توان جسمی برکت میده التفات ما بود این برکاته برکات الهی و فضل خدای تعالی است خب ایشون در شما اگر ملاحظه کرده باشید حتما طلاب فضلا گاهی بحثای ایشون از جایی که دواریش لاگوچی یا نوشتاره اولا بیان خوب راقی خروج دخول خوب در مسئله خروج خوب در مسئله تر مرتب بودن، ملتبات متقن بودن، اینا مهمه. ملتبات گاهی وقتا یه استادی هست مثلا بفرمایید بیانش قاصره بیان، یا یه استادی بیانش خوبه. یه استادی ورودش خوبه خروجش ملتبات نمیدید. خوب نیست. حالا به مناسبت عرض بکنم یکی از آقایان خدا رحمتش کنه رضوانو ناطااله علی البته اون به خاطر این نکته دیگه این رو گفت چون یک کتابی نوشته بودم بنده با هم همسفر همسفر عمره شدیم با اون شخصیت خدا رحمت کنون آقایونه که هم نجف بود بعد ساکر مشهد شده بود بعد یک کتابی یکی از رفاقه گفتی فلان یک کتابی داره بساطه این حرفا اون کتاب رو اسم نمیبرم گمال فلانی اونه اون اصرار کرد من عباد داشتم به خاطر که کمی مقدس معاب بود متدین بود من تا صف کشیم بود من ببینه اصرار کرد این کتاب رو من بفرست مام سادگی برای بالاخره گفتم که هم هست چون رشدیگری ما اثر گوشید گفتم این کتاب رو برایش فرستادم این با ما خیلی رفیق بود خیلی چیزی که با هم با, با, با پدرم رفیق بودم با ما خیلی هم خوشگذرونی سفری که باشیم بعد کتاب رو که فرستادم چون که یه کمی من نمی‌خوام معاش ارزش کنم با مزاخ ایشون سازگار نبود تلیفونی با من صحبت کرد و بساطر این از مشتند بعد گفت که چه دخول خوبی و چه خروج بدی خیلی پاس چون که چه دخول خوبی و چه خروج بدی و تو رو در باشی نداشت چون <laughs> که حالا ایشون واقعا هم دخولش خوبه هم خروجش خوبه الگوار ما میدی؟ هم دخولش ما این خیلی خوب ایلتفایت باید آدم بارد این مطلب میشه بعد نتونه مطلب را به آب بکشه بیاری بیرون بمونه اون وسط مثلا فرکن شی. البته این معناش این نیست که حتما در یه نکیجهی که مرسی نظر قاطع خدمت شما یک طرفی نه خدمت شما اصد مقتضای احتیاط مقتضای فن اینه که توقف کنی ایلتفایت کنی در یه مسئله و کم لهم نظیر من قبل فعول البزرگاه، فعول علماء شیخ مفید، شیخ توسی، صاحب شرائع محقق خدمت، دیگران، امام و دیگران به وقتی که به نتیجهی نمیرسیم، مثلا توقف میکنن توقف هم خودش چیزه ادوان ما بودید، موقفون توقف، فاید توقف و موقفون ادوان ما بودید. اما نتونه متحیر باشه چی بگه ادوان اینه، ما بگیم یا خفت کنه، مثلا فرق کن، کنه، سنبل کنه ایشون خدمت شما عرشبت با اون استعداد العاده و توفیق الهی و اون اساتید مختلفی که دیده و وساط اون یه واقعا خدمت شما عرشبت بیدم یک بحث بسیار سنگین و راقی ازدباه داره مطالب خیلی خوب جنبه های فقهی و اصولی رجالی فنی جابنه های اجتماعی جنبه شما خواه همینجا یک رو همینطور عرض کنم حتما اساطیدی دیگه هم گفتن ازدباه داره این دید یک فقیه هم خیلی مؤثره که با خواستگاه فکریش خواستگاه اندیشه فکریش تأثیر داره دیگه من شما ارسود که حکوم با اون اسلام را مجموعه احکام و شریعت را یک مجموعه یک منظومه بداند منسجم که هم جنبه اجتماعی را رعایت کده هم جنبه فردی رو هم سعادت اخ... اخ... اخروی رو د... تضمین کرده هم پیشرفت و تقدم اجتماعی رو یه وقت یه همچی دیدی داشته باشه وارد بشه وارد و گود بشه و وسائل رو حتی که ما حدل و کنه با این دید وارد بشه یا نه بگه خدمت شما هر که ما یک خدمت شما هر اسلام رو یک اسلام فردی و, و خدمت شما کاری نداشته باشه و کار دیگه ای و تکالیف تکالیفی داریم که شما اجازه ما انجام بدیم همون بس اون تکالیف فردی و این هم خیلی فرق میکنه در برداشت در فهم از متون آیات و روایات و اینا خیلی فرق میکنه به یک اعتباری همون فرمایشه مرحوم آیتولای که البته ما با همون فرماییش بخواهم به انقول چنداریم میگیم که آخوند ده, ده. التفاید در محدوده اون ده فکر میکنه آخوندی که در اجتماع است و برخوندی یه جور دیگه فکر میکنه البته منظور در محدوده فکری به ممکنه یک آخوندی تو ده باشه توی ده باشه اما خدمت شما فکر چنان از نظر دید و, و دی خاصگاش التفایدان میدید خیلی خوب به فهم خیلی خدمت شما هرچی باید جهانی به فهم اینطور نیست که مثلا گاهی وقت روزگار انسان رو به یه ده میکشه به یه میکشه حالا بعضی قصه ها رو که من نرمی کنم برای این که بیشتر از این خسته نشید داره میگم مثل شده ها چنیدید من ما آقای متحریر رضبان ناتا آلا علیه رفته بود در گفت رفتم بروژر علاقه من چون رو ما آقای آی خدمت, شما خدمت ایشون ایشون با مرد کوه علم و خدمت شما هستن رجال میگه برای اینا برای رجال میگه خب علت اینکه وجار رو هم انتخاب کرده بود به خاطر که رجال قصه داره که فلانی کجا تاریخ ایشون تاریخ افرادو می گفت چی کاره بود مثلا فرقون دهان بود روقن فروش بود واساتون این آقا جوری بود عقیده چی چی بود بعد کجا رفت بعد این چیزا هم الزام نمیدیم این حال ای داشت اونجا هم طلبه شده بودن عوام بودن یه مقدار دستاری مثل بنده بسته بودن سرشون که مثلا برای اینکه یه مشغولیتی داشته باشه در مطنی رو که انتخاب کرده بود این کوه علم دید که مناسب اینه که با خدمت شما از ها کلم و ناس علاقت رو اقول هم این به مقدار رو اقول اینا رجال رو انتخاب کرده بود بحث که این جنبه تاریخی و قسم زیاد داره گوش میده بعد مروم آیو متحرین نده که که حتما خوندی جا جا نویشه میگفت که وسط چیز که داشت صحبت میکرد که دلم باید آقای بروجهگی بخاطر اینجا سوخت یکی کسی از اون وسط مجلس که ها،, ها جا ها جا گفت، گفت، قبل گفت علی نامه نوشته سلام برد نرفشت مدویجی که مثلا فنکن وسط دست یعنی اینقدر خدمت شما گاهی وقتی یک فحلی در یک جایی واقع میشه یک کوه علم یک جایی واقع میشه ناچار خدمت شما باییندار تیه کنیم نمیخوام بگم که چی؟ خب حالا این اینم جمله یه معترضهی بود که می خواستیم به رفت خستگی نبیم شاید خستگی آقایونم بیشتر کردین هر دوما <تصفيق> <تصفيق> عرض شد که خب روش تدریسیشون چی جوریه فقهیشون اولا و یزکی هم و یعلمهم کتاب این زمزمه می من میفهمم ها و می‌دونم کی. خدمت شما عرض که که زمین می‌کنید گوش بدید ما یه روز مهمون شما که بیشتر نیستیم دیگه نمیایم یعنی خاطرتون جنج باشه نه قهر می‌کنم یعنی میگم ناراحت نباشید دیگه ما رو خسنده نمی‌کنید چی می‌گه این که خدمت شما عرض که گوش بدید خدمت شما عرض یکی از ویژگی ها و این باید ببین بعضی هر چیزی که خوب است انسان باید برداری کنه و بفهمه التوا و بودی و اون اینکه او خیال نکنه من عینکم زدام کورم می‌بینم و گفت که واقعا جذبیم و یادگیریم اول کتاب. البته این آیه آیات شبیه این چهار در چهار مورد در قرآن کریم ذکر شده که در دو مورد در یک مورد تعلیم مقدمه بر تزکیه، در سه مورد تزکیه مقدمه بر تعلیم. حالا اونم یه نکته ای داره در اون آیه یک تعلیم تعلیم تعلیم بر تزکیه. حالا شاید آن جای جایش نیست که هی ما داریم من هی کلام یا جور کلام دارم. ایشون یکی از نکات مهمی که داره در روش اول فقه اول یک روایت اخلاقی یک روایت تربیتی رو بیان می کردن بیان می و این رو شرح می دادن توضیح می دادن اینا. خدا حفظ کنه خدا رحمت کنه یکی از آیون از علمای مشهد من گاهی وقتی که مشهد می رفتم و به ساعت مشرفی شدم میرفتم شرکت میکردم بحث بعضی از آیون همینجوری گفتم مثلا یه هفته هستیم اینجا ول نگردیم درست حرام حضرت ریاست و مشرف بشیم حالا وقت ایام اگه درسی باشه, باشه می اون درسم شرکت میکرد دیدم اولی که رفتم اصول میکنم دیدم که الان ولو لا نفرم این کل فرقت نسمه هم طائفه اول شروع او فکردین ا من اول بخیرم که مثلا بحث خدمت شما عرشبت که آیه نفر است چیز هرچی دیدم ارتباط نداره این برد چی میکنه روز بعدم دیدم باز هم آیه رو خونده. بعد بعد فهمیدم این آیه رو به عنوان تبلیغ میخونه نه شرحی نه چیزی نه خب اونم خدا رحمتش کنه اونم خرزشی این بود که بگه به طلبها با این که میاد اینجا میشینید پایی این برد خرز این مقدمه است که بعد که چیز یاد گرفید اینجا پا برید تبلیغ کنید پا برید خدمت شما را در جای وظیفهتون انجام بدید تون ازش این بود تذکر بده که خدمت شما را در این نچسبن به حوزه ها و حجره ها و خونه ها و اینا برن وظیفه خود شما مجاهد تبینی که مقام معظم رهبری بیان کنید اما خب من دیدم که نه بعد خودم بکنم این آیه رو هر روز می خونی علت وارد من میدید خوبی آیه تو قرآن هم از بسرنمی شد در ماها علت من یا آب تو حالن آقای بزرگوار یه شرحی یه چیز یه نصیحتی یه چیز هیه حالا امتیاز آه حضرت آقا اینه که این روایت اخلاقی رو الان با شرح و بس و به نحو تأثیر گذار بیان میپرن خدا اون بزرگوار رو رحمت کنه و ایشونم سایش رو بر سر همه مسلمین مستدام بداره این یکی از خستت آقای و بیشگی های تدری تد، خب بعدم خدمت شما عرشبت بیان قول رو به صورت واضح مسئله رو منقه میکرد به قول معروف که ببینیم به قول بزرگان ببینیم ما سر کیه؟ میخواییم بتراشیم اول تنقیه مسئله این مسئله بعدم خدمت شما اقبال مسئله رو هم خدمت شما عرشبت که بوجوه ما یمکنن یستدل و علا زالک رو طبق قاعده خدمت شما حمومات طبق اصل اولی طبقی خدمت شما عرض شد که اگر دلیل خاصی داشتیم دلیل خاص رم اونجا بیان بکن دلیل خاص رم بکن. خیلی منظم چی... چ... سا... تابه. یعنی چینش درسم مهمه برای قاطی پاتی قاطیپاتی پاتی درس گفتم من درس چون در درس ها زیاد شدیدم درس نجف و اینا درسی ای که از آلین نجف ای کسی گفت که بیا درس ای که از آلین سنوی برم خدا همه رو حفظ کنه برای سلامتی همشون این مادر همانا محمد ما در البته این اشکام میگه که در این روایت هم هر کی یه کسی رو سرزنش کنه البته من جایی نگفتم اسمم نمیبرم یکی سرزنش کنه به اون مبتلا به اون نمیمیره مگر به همون مبتلا شده به خودم مبتلا, مبتلا شده معلوم شما من مبتلا شده بنده الان همینجور پراکنده گویی میکنن اما رفیق درس اون بزرگوار اون درس به قدری از این شاخه به اون شاخ میخواد یعنی بول من ریکه ای بس کنه اینقدر بس کرد چیزاتی خسته شدم من دیگه بعد از مدتی نرفتم بعد یه کسی گفت که چرا درس نمیگی گفتم بابا فقط این آقا نگفت که امروز نهار چی خوردی <تصفح> <تصفح> خب اینقدر خدمت شما رو مقدمات کار رو که نباید گفت که مثلا گم میکنه طلبه اون طلبه میخواد بندی از این جل جلسه آمدیم بیرون چی مثلا این جلسه بنده میشه که هیچ اصیلی نداره برای شما خلا واقعا این ترتیب و میره که استاد یعنی یکی از نکات اینه که آیون وقتی که میخای بازم ببین زمزم نمی این زنبور بعد چیه آ یکی از نکاتی که استاد باید رو آیت کنه بعد از اینکه درس رو خوب فهمید که میخواد چی بگه باید فکر کنه که چه جوری بگه التفات نمودی چه جوری بگه دستبندی کنه مرتب که من گیرنده خوب بگیره و مرتب بگیره التفات برمودید و این رو میتونه هضم کنه و این خیلی روش سیابویی که بعضی از اساتید این خصلت رو دادن ببینم واقعا یک نکته مهمیه این امتیاز رو ایشون انصافا داره این امتیاز هم داره در تدریس التفات برمودید همون دسته بندی مطالب و خب در مناقشه با بزرگان مناقشه با بزرگان و حرفای بزرگان رو نقد کردن اگر قابل تأیید تأیید کردن اگر قابل نقد دفت کردن بزرگان فهول بزرگان مثلا فهر بفرمین مرموم مقدس اردبیلی مرموم محقق خونساری شهید ثانی محقق خواهی امام راحل علامه حلی محقق شرایع همه همه بزرگان معاسمین معاسم. به عبارتون اخراب باز این فرماییش مرموم بر آیت الله بروجهلی اینا مهمه دارم به شما عرض میکنم تکراره نگو چرا تکرار می‌کنم ما شنیدیم بابا فبا ایالا عرب بکنم ما تو کذبان چرا اینقدر تکرارشتی یه خوریز باید تو کله ما بره الوار با و اون این است که الوار با گاهی آخر هم البته تکرار میگن مقام آقای بورژوایی یه درسو تموم کنم گفت دوباره شروع می کرد میستم گفتم الحمدلله تموم شد ما خلاص شدیم این بحث تموم شد دوباره شنبه می من دوباره شروع می کرد گفتم بابا این تمام شد گفت شما فهمیدید گفت خودم نفهمیدم ال دوات ما خودم عادت نفهمیدم حالا گاهی واسه من تکرار میگم خودم برای تلقین خودم اینم یک نقطه خوب اله خدا رو شکر کنی یه چیز میخواستم بگم از ذهنم پرید الهم دلاله موضوع خیلی مهمه حالا بازم یادم نیمه فایده نداره ها اینو بعد میشینه بگم خوب شد گفتی خوب شد یادم رو بارک الله کنید بفرست و اون اینی که میفرمود مرمو آیت الله بروجردی که بزرگی بزرگان نباید منعه از نقد کردن اونها بشه حالا مقدس ارنبید خیلی بزرگی خیلی خوب اما کلامش اگه قابل نقد نقد میکنم نقد محترمانه معدبانه و منصفانه الدافانه. گایی وقتا خدمت شما رو ما دیدیم ها بعضی برای خدمت شما ارزد نشون دادن بازو بشاید اولنما و آقایین اجل بعضی جا گاهی وقت پیدا میشه التوادم کلام یک یه بیچاره یا یه محققی یا بزرگی رو ور می‌ذارن کج معنا می‌کنن بش اشکال می‌کنن التوادم دارید بعد می‌خوام بگم که ما مثلا بگیم بزرگ بزرگکبار مثلا اشکال کردیم خب بابا بیچاره نگفته این رو یه حرفی رو با کولش و بعد اشکال اشکال ال... واردی بهش می‌کنی خب کلام رو... تو رو کج بیان می‌کنی التوادم ما حالا یا کج می‌فهمه که یعنی خودش هم باشه رضا بعضی دیدید که میگمیسند که انصاف را رعایت کنید چون میدونن ما بی انصافیم در اشکار کردن <تصفح> میگمیسند که به عین الانصاف نرجو من الاخوان اندینزرو الهاز المقال به عین الاخب... الانصاف به عین الانصاف, الانصاف. یعنی بی انصافی نکن حالا ما رو بخواییم بکوبی هیچی هرچی تونستی ببندی به ما حالا علا کلا یه شون واقعا منصفانه منظورم که منصفانه نقد میکنن مطالب رو اگر جای نقد اگر جای دفاع دفاع میکنه اگر گفتم بزرگان فرق نمی فرمایش امام باشه اگر قابل فقهی از نظر قابل نقد باشه نقد میکنه و هم در این همین بهوش مباحثش ملیء از این نمونه ها هست خب من برای وقت زمینه های اجتماعی زمینه های خدمتشون نکات علمی ادبی، فمی که هست همه اینا رو بیان فهم حالا من یه نمونه یه نمونه رو میخواهم اینجا کنم اگر خسته شدی صلوات بفرستید بفرسته دارم ندارم اگر خسته نشدید بازم صلوات بفرست بگم اگر خسته نشدید بازم صلوات بفرست تا بگم یه نمونه رو میخوام نقل کنم ببینید که محتوا و به قوله مش نمونه خرواری در باب در کتاب در بحث قصاص یه مسئلهی هست و اون مسئله این است که حالا میخوام فقه بگیم دیگه اشکال که نداری مسئله فقهی بگیم که؟ یه مسئله از این که اگر نستجی رو به آزن آزانال الله منزاله که اگر یه کسی مرتکب یه قطر عمدی شد یک کسی رو کشت خب و بدبختم بود مدیون بود از نظر چیزی قرض و قولم داشت بر وقت مدیون بود یه کسی رو کشت عمدن خب این حکم شش حکمش قصاص دیگه حکم اولیش قصاص یعنی قد جل نال ولی هی سلطان هم. من قتل مظلومن مجعل الله ولی هی سلطان بحث در نزد فقها این است که آیا اولیاء دم خب درکت آیا اولیاء دم در این موره با میتونن قصاص کنن آ میتونن قصاص کنن بقی جعلان ولیه سلطان قصاص کنن یا نمیتونن قصاص کنند؟ چرا؟ چون که این قاتل ملیونه طلب کار داری از زید عبید عمر بکت اینا پول گرفته پول قرض کرده الان بده کار خب اگر اینو خب اینا اگر دیه بگیرن با به وسیله دیه گرفتن استیفای دویونش بعضش و کل دوونش میتونن استیفا کنن اگر به کشانه چیچ این, این قصاد شده اما دوون به گردن طلب طلب طلبکارا سر جای خودشون موندن ها اینا چیکار بوده قاتل قاتل قاتل قاتل, قاتل مدیون بوده التیواحد میبینی خب حالا دل... دل... دل... دل... دل... دل... حالا دون حالا ببینیم شما بیه فقیه بزرگواری داره ازارم. فتما میکنیم فتمات بالای سر اونم به جای خودش مناخش کنیم حالا حالا گوش کن خدمت شما عرض شود که اولا با این نقطرم اینجا عرض کنم ایشون انصافا اضافه بر این که بیان فارسیش بیان راقی یک عربیش هم کلم خوبی یعنی به زبان تازی، به قلم تازی وقتی که مطلب می نیسه انصافا خیلی خدمت شما عرض شد که عربی خوب عربی قابل استفاده به قول یکی از بزرگان خدا را احمد از کنه می گفت که ما عربیمون که عربی نیسه همون فارسی علفلام اولش می داری. اما نه واقعا ایشون به اینجور به نظر میشه که چیزم هست حالا من ببینه عبارت ایشون رو بیخونم المساله اول شما استفاده کنید فقه آن محمد است اشت... اشت... آه... رهبری میفرمايد المساله چه ثانيه و هي اما اذا کان المقتول مدينن التفاوت با مدين اذا... اذا کان القاتل اذا کان القاتل قاتل بوديش اذا کان القاتل مدينن ولم يترك ما و به دينه و بامكان با الاوديا ان يصالحوا القاتل الجواد مدي ثم اداء دينه كلا او بعضا الجواد بما ياخذونه, يأخذونه عوضا عن الدين فما هو تكليفهم هل يجوز للاولياء والحال در این صورت که قاتل مدیون التوبات بودید دین بگردنشه گردنش هل يجوز للاولیاء والحاله هایی المبادرہ الی الاقتصاص من دون تظمینهم لحق الغرما من ولی دمم التوبات فرمودید آیا جایز برای من قاتل رو قصاص کنم بدونی که تضمین بکنم یه وقت که من تضمین بکنم میگم که بابا جون به مقدار مثلا فرض کن تمام دین یا بعضه دین که به مقدار دیه هست من دینتونه میدم من دینتونه میخوام این قصاص کنم این آدم شریه چرا اون فرق میفرمایید اون بنده خدا که من ولی هستم او رو کشته من تضمین میکنم دین رو بدم و قصاصش میکنم مثل در مورد خدمت شما، اگر زنی مرد رو کشت در اونجا باید نصف دیره بده دیگه باید خدمت شما ارچی نصف دیره بده و حق داره که شوهر اون مرد رو قصاص کنه اگر نداد نمیتونه قصاص کنه اینجا هم پیبر کنه بگه میکنه بگه که ولی دم بگه من تضمین میکنم تضمین میکنم که من دین رو میدم الديون ما حالا له بمقدار ديه یا حتی کل دین رو و قصاص کنه این یک قول او لا یجوز الا یجوز الاقتصاد هل یجوز المبادره الست من دون تضمین حق الغرمه تضمین لازم نیست او لا یجوز الا مع تضمین بدون تضمین جایز است یا باید تضمین کنه ال هناك قولا کما اشاره علیه المحقق چون محور بحثیشون هم شرایع التفادم بودی بعد می که الاول جواز الاختصاص که حق اختصاص رو داره مندون تزمینه التفادم من بودی مندون تزمینه تمسکن به قوله تعالی من قتل مظلوما فقط جعلنال ولیهی سلطانم و هو مختار محقق کما مرد و سانی ادم و یواز دالک مندون تضمینن لحق الغرما که جایز نیست که تمستق کند کلمت شما هر جایز نیست باید تضمین کنه تمستقن به روایات چون روایت داریم در اینجا ارتفاع دلیل خاص داریم مثلا فرمایید این رو باید تضمین کنه بعد حق و القائل از شیخ فلنهایه و جماعتن اخرى علامه فل جواهر خوب بعد ایشون و کل قولین مطلق من ناحیه رضا جانی به دین او عدم رضا گاهی وقتا جانی اون قاتل میگه من حاضرم نکشید منو من دیه میدم گاهی وقتا میگه من من دیه نمیدم بخواهید بکوشید بکوشید یا عفو کنید منو من جانن یا بکشید من ال دوادی یعنی برای اولیاء الهیام سه تا گزینه هست یکی اینکه دیه بگیره در صورت که قاتل بده دیه یکی اینکه که کنن مجانن یکی اینکه قصاص کنن حالا اگر حاضر نیست خدمت شما ارسود که قاتل بگه که من دیه نمیدم پول ندارم دیه نمیدم یا دارم نمیدم مثلا فرض میفرگید می داره به طور کلی حالا اون مسئله کلیه در اینجا گزینه چیز چیه گذینه یا که عفو کند مجانی یا قصاص کنه تا تا نه هم کشته هم, هم باید, باید مدیون بشه تا بشه دیگه مفرم. خب دیگه مدیون میگیم قاتل مدیونه دیگه قاتل مدیون. دین بگردن چه مسئله اینه که صحبت سر اینه که قاتلی که دین به من میام میکشمش التواب برمدید این دین طلبکارا میپره چون که نداره ادا کنه اما اگر دیه بگیرم این دین نمیدم بگیرم میدم به بده. دیگه قاتل دیه یعنی می نه قاتل دیه میپردازه میپردازه قاتل دیه رو میپردازه به اولیاء اولیا اولیاء دم التواب برمدید با اولیا... یا خودش التوادام قاتل وقتی که دیره میده میده با اولیا ادم اولیا ادم دینه طرف طرفکاره من... مکتوب مثلا... خب حالا اجازه بده علی بله بله حالا اجازه بده <تصفح> خب حالا بذم بخونم این. در اینجا مرحوم صاحب ت... تبرسی مرحوم تبرسی <تصفح> گوش بدید والا من بیشتر گیج می شما گوش بدید مرقوم تبرسی ایشون فرموده که خدمت شما عرض که این در صورتی است که قاتل قا... آماده باشه دیه بده اما قاتل اگر آماده آماده نیست برای دیه دادن التفات برمودید بودید اینجا دیگه این این تفصیل تزمین معنی نداره التفات برمودید بودید قاتل اگر آماده است دیه بدهد ولی اولیاء ادم خدمت شما بخون قشاش کنند اینجا باید تزمین کنه اولیاء ادم باید تضمین کنند اگر خدمت شما که تضمین کنن چیه؟ التباید حق قصاص رو ندارن چون که تزیع حق طلبکاراست چون تزیع حق طلبکاراست خب بله قاتل مال دشت نداره نداره صحبت اینکه نداره صحبت اینکه نداره قاتل مال نداره میخوان خدمت شما عرض شود که خدمت شما عرض التباید حالا ببینی اجازه بدی فعلى هذا الاساس ایشون میفرمایید یک اجماع مرکبی است که این نفی قول تبرسی رو میکنه که الذين سبوا صاحب الجواره الا تبرسی من ان ضمان فیما اذا بذل الجانی الدیه فعین اذا یجب قب قبولها ولا یا جزء للاولیا القصاص الا بعد از ضمان فالا یبذل ها جاز القتل من دون غیر من غیر ضمانه حالا منظورم این از این مقدمه اینه من برای چی دارم ذکر میکنم اینجا ایشون اولا مسئله رو میگه که مختزای اصل اول لفظی چیه ما به اطلاق میگیم که به اطلاق تمسک میکنیم اگر دلیل خاص نداشته باشیم میگه اگر دلیل خاص نداشته باشیم مختزای اطلاق و من قتل مظلومن فقط جعلنا ولی سلطانا است که حتی در موردی که ولی دم حاضر نیست تزمین کند دیارا التفاد من بودی پرداخت دیارا حاضر نیست تزمین کند التف تزمین کند دیرا اینجا چی چیه؟ اینجا میتونه قصاص کنیم اگر بگید که این آیه در مقام بیان از این جهت نیست در از این جهت در مقام بیان نیست دستتون از اطلاق آیه کتا باشه مقتضای اصل عملی هم این که شما آی شک میکنید آیا در قصاص قید اضافهی هست غیر از خدمت شما عرص که آیا رضایت رضایت، تزمین تزمین برای دفع, دفع دیه نسبت به قاتل التفایت ما لازمه یا نه؟ التفایت ما میگه اصل عدمه اصل در اینجا هم عدمه مدیون هموندور که آقا گفتن التفایت ما میدید؟ درسته خوب، مقتضای اصل عملی هم پا چیه؟ کی براءت حالا میان تمام اینا رو من برای این نکته دارم عرض می‌کنم مقدمه این نکته است میایم میگیم که خیلی خب آیا دلیل خاص در اینجا داریم یا نه در یه سه روایت داریم در اینجا سه روایت هست یه روایت به زنگاه من همین حرف این روایتی در اون روایت هست که خدمت شما عرض شود که روایتی است که شیخ به اسنادی نقل میکند در مورد روایت سألت ابا عبد الله ان ابي بصير قال عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل و عليه دین مديون مقتول است همون طور که آقا گفتن بله علی... این عبارت هم درسته ان عن... الرجل يقتل و عليه دین ولیس له مالن مديون مقتول مال نداره نخاتل فهل اولیای ان یهبوا دمه لقatile التفات نمودید آ یا برای اونها جایز است که اینها خون او را ببخشند التفاظ بامودی و علیه دینون یعنی مجانن ببخشند ها اگر با پول ببخشند خب یه پولی گیره اون, اون مقتول میاد بعد از اون پول از, از دیش دینش ادا می از،, از اون پول دینش ادا می کنند بله فهل اولیائه ان یهبو دمه لقا، لقاتله و علیه دینون فقال علیه السلام ان کان اصحاب الدین همال خم خمت خسما للقاتل فا این وهبوا هودیت القاتل فان بهبو اولیاء اودیة القاتل فجائز وان ارادو القوت فليس لهم ذلك حتى يضمنوا يضم الدين للغرمة وإلا فلا اگر میخوان قصاص کنن اتفاقی بودید باید تزمن کنن تزمن کنن برای اون مقتول را بگن ما دیشه می التفات بر برمودید و اقصاصم بکنیم که بتونن به وسیله اون دین، دین دین مقدور رو عدا کنن دین مقدور رو عدا کنن نکته درست، التفات برمودید به زنگاه مطلب من اونجا نبود، اینجاست که باعث اکفلت من شد اینه در اینجا، این عبارت اصحاب و دین همال, همال خسما للقا للقاتل هم الخسماء للقاتل صاحب جواهر به خاطر این تعبیر که از ناهی دلالت که میگه که انهو لازمان علال اولیا ولو عفو, عفو عن الجانی و اما ازا اراد القصاص فعلیهم انجزمون الدین للغرما این تعبیر که خدمت شما ارچود همو الخسماء للقاتل این مسار بحث شده مساری که هم القسما القاتل یعنی چی ها صاحب جواهر با این که با اینکه اصالتا عرب نبوده ظاهره، اما بالاخره در بیئه عربی زندگی کرده در اونجا بوده سالیان متمادی اونجا بوده بالاخره عرب بوده عرب شده بوده و با فرهنگ عربی و اینها آشنا بوده اما در عین حال الجواد قد یک بود در اونجا نسبت به این عبارت متعجلی که هم الخصمات القاتل میگه خدمت شما عرض شد که این خصمات القاتل این رم میگه این روایت مستربه الخبر المضبور مختل المد به اعتبار فرق بین الهبت و القبض فجوز للوارث الاول من الاول در هبه رو جایز دون که الودوادانو بدون تزمین هبه جایز دونسته که عفه مجانی باشه اما قصاص رو میگه جایز نیست مگر اینکه که تزمین کنن. و هما من مشترکان فی تفریت حق دین میگه خدمت شما عرصه چه عفه مجانی کنه الودوادانو بود چه قصاص بدون تزمین بکنه این چطور این خدمت شما عرصه که این تفریت حق میته اون مقتوله چرا همچین کاری بکردید بل به اعتبار قولی فيها ان اصحاب الدين هم الخصما المناسب لتفريع عدم جواز الهبه میگه این مناسب اینی که بگه این که گفته اصحاب الدين هم الخصما که اصحاب دین اینا خصیم هستند این باید نتیجه چیه؟ نتیجه این است که بگیم که این جایز نیست خدمت شما تهبه جایز نیست عفوا خدمت ببخشی شما ببخشید شما عفو کنی شما عفت کنید قاتل را بدون خدمت شما اخذ دیه عفت مجانی باید بگه عفت مجانی جایز نیست حرف بنده اینجاست آهازت آه آقا میفرماد که خدمت شما عرض این استظهار صاحب جواهر با اینکه از فهور بزرگان فقه هاست و عرب است و عربی جزوی خدمت شما عرض به عربی زندگی کرده بساطه این عرف ليس لیس علاماین این فرمایش صاحب جواهر درست نیست من کون المقصود من قولي ان اصحاب الدين هم خصماء للقاتل اغا میخاد بفرماید که این تعبیر یک خلقی شده خصماء القاتل با خصماء قاتل فرق میکنه در روایت آمده خصماء مل خصماء للقاتل اینا خصماء برای قاتل هستند خصمای برای قاتل یعنی به دفع قاتل روایت میگه اینا خصمای هستند به نفع قاتل ها خصمای هستند به نفع قاتل یعنی وقتی که خدمت شما عرض شود که میگه که اگر اف کردی مجانن التفات مابودید عفو کردی مجانن التفات مابودید اینجا خدمت شما عرض شد که این وقتی که در اونجا میگه که اگر قصاص کردی باید تزمین کنی اگر قصاص کردی باید تضمین کنی معنا وقتی که میبیند ولی دم من قصاص کنم باید یه بدم. هم بدم قص... از قصاص صرف نظر میکنه این به قاتله خصما لل قاتل. یعنی به قاتله استشاد میکنن به آیه شریفه در سوره نسا در سوره نسا میفرماید خدای تعالی خطاب پیغمبر ولا تکن للخاینین خسیما میفرماید که خصومت وقتی که بلام معتدی میشه به, نفع، به معنای نفع یعنی طرفداری از خصما وقتی که بدون لام ذکر میشه به معنای دشمنیه به معنای خصومته وقتی که بالام تعبیه میشه یعنی به نفع آیه شریفه میفرماد که ولا تكن للخائنین مدافع خائنین نباش به خائنین کار نکن به پیغمبر خطاب میکنه حالا اون در شع... بش... اشاره میکنن به شعن نزول آیه شعن نزول آیه شریفه چیه؟ شعن نزول آیه شریفه این بوده که خدمت شما هرکر سه تا برادر بودن به نام بش و بشیر و مبشیر ظاهرند اینها خدمت شما هرکر بوده که حالت نفاق و این هم بازشون داشتن اینا میرن یکی از این بشیرشون میره سرقت میکنه از خونه یکی از مسلمان ها به نام خدمت شما عرض شبت بوده یه سرقتی میکنه مالی رو میدوزد وسط این اروا شمشیر و آزوق و اینا بزن. بعد اینه میدازن به گردن کسی دیگه بیگندر یه لبید بیچاره میدازن خدمت شما عرض که اون یک کسی خدمت شما عرض که میاد خدمت پیغمبر خدا اجمالش عرض میکنه میاد خدمت پیغمبر خدا این قصر نقل میکنه که بله فرانی بسن بشیر رفته دزدی کرده سرقت کرده سرقت کرده این بعد اون کسی که آمد خدمت شما عرض که پیش پیغمبر شکایت کرد که رفاقه باشد شکایت کرد و این خدمت شما این گله, گله مندی رو کرد رفاقه بود یا قطاده نمیدونم. آمد یک این گله رو کرد و بیان کرد خدمت پیغمبر اونها ها فهمیدن که این آمدن پیش پیغمبر بیان کرده اونها هم یه هیئتی رو همون خانواده بشیر رو از, بني، از قبیله بنی اوبیرق بودن سهارا اوبیرق آمدن خدمت پیغمبر یه حیعتی رفرست دادن یه صاحب لحام و جمعیت رفرست دادن خدمت پیغمبر که بیان بگن اینا تبرعه بکنن اینا رو که بعد این بشیر و مبشر و شبر خانواده قبیله بنی عبیرق اینا سرقت نکردن این بچه هاشو اینا, این اینا رو تنزیح کنن پیغمبرم بر اساس ظاهر قاضی به ظاهر کیسکند پذیرفتن حرف اینا رو پذیرفتن و اون کسی رو که آمده بود خبر رو آورد بود خدمت پیغمبر او رو اتاب کردن اتاب کردن وقتی که اتاب کردن اون خدمت شماشون اونم ساکت شدن آدمای خوبی بودن خاج شدن پذیرفتن چیزی نگفتن اما ناراحت شدن در درونشون شد. که اینا میدونن سن یاد قالطقم دروغو بعد آیه نازل شد آیه نازل شده کتاب پیغمبر ولا تكن للخائنين خصيما برای خ... طرفدار خائن این نباش اینا تو خائنن پیغمبر تو اشتباه کردی در اینجا حالا اشتباه رو به هر نحوی میخوای توضیح بدم ولا تكن للخائنين خصيما برای خائن طرفدار خائن نباش از این آیه شریفه میگی که در اینجا للخائنين این خص خس... بالا در این آیه شریفی که داره میگه این لام یعنی به نفر خائنی آیه صاحب جواهر، اینجا لامه در این روایت هم لام بود دار داشت اینجور این بود دیگه ان اصحاب الدین همول خسما ارضباد ما بودید للقاتل یعنی میخواد بگه که از این که این آش خدمت شما این روایت میگه میگه که اگر خواستن قصاص کنن باید تزمین کنن التفاق من یعنی باید تزمین کنن یعنی چی؟ یعنی این به نفع قاتله چرا به نفع قاتله؟ به نفع قاتله چون که مجبوره اگر میخواد قصاص کنه باید تزمین دیه بکنه باید تزمین دیه این خود جانی که حاضر نیست دیه رو بپردازه و اگرم حاضر شما که قبول نکردی دیه رو بپردازه شما داری تفریت میکنی بر مقتول شما بر مقتول داری بر مقتول داری تفویید می دیه را که به وسیل اخذ اون دیه میتونه دینش به بردازه بر اساس این که داری تفویید می کنی دیه را بر مقتول التفاهات از مقتول تفویید میکنی که به وسیل دریافت دیه او بتواند دینش رو اولیا ادا بکنند دینش رو ادا بکنند و طلب چیز میکنی یا عفو مجانی مخوایید بکنی اما اگر مخوایید دحساس کنی بایید چگاه کنی بایید تضمین کنی این که قصاص بکند و تضمین کند این به نفع قاتله به نفع قاتله و از اون آیه استفاده کردن از آیه شریفه که ولات کن لل، للخائنین قسیما اینجا لل، خودسما للقاتل وقتی که بالام میاد متعدیه بالام میشه یعنی به نفع. این روایت هم همینه میخواد بگه این روایت هم میخواد همین دیگه پس بنابراین این این شد طول کشید. چش خب من دیگه بعد اینجا سه تا روایت هست اینجا روایت رو ازند در سند و دلالت و این چیز میکنه بعد آخر کارم خدمت شما هم میفرماد که چیزه خدمت شما هر باید ما در این مسئله توقف داریم اون من نمیتونم خدمت شما بخاطر این که این روایات. حالا گفتن جنبندی کنی که خیلی شلوغش کردم به قول معرو پس بنابراین مسئله اینطور شد که در موردی که اینطور بود که خلاصه بکنم در موردی که مقتول مدیون است مقتول مدیون است و جا از مال دیگری ندارد که دیونش وفا بشه دم، آیا می توانن قاتل را افل مجانی کنند، او حاضر نیست که دیه رو بپردازه یا قصاص کنن و قصاصم اگر مخانی بکنن اون گفت که خدمت شما شد به شرطی که تزمین کنن تزمین کنن که چی چی؟ که خدمت کنم دیه دیه رو بپردازن که به وسیله پرداخت اون دیه دین مختول ادا ایشون بر اساس اون نکته به صاحب جواهر که جزء و بزرگان واقعاً خیلی از اسماء افتخاریشون استقال اسکان کنه و همچنین خدمت شماکار نسبت به امام و سایر بزرگان یعنی چنون دقت نظر داره دقت ربایی تاریخی نکات ادبی نکات رجالی بساطینه یه مسئله دیگه اینا سویی دیگه ذکر می‌کنم در بازم این در باب قصاصی که آیا این مهم داره، این نکته چیزی داره آیا در اثبات قصاص به شهادت یک مرد و دو زن میشه در, در انبال که میشه که میدونی در آیه شریفه داره در سوره بقره ازوان که انبال رو به شاهدنیم به به رجل امکانه ازم یکون رجلان بر بر بر ام و امرتان و رجل و آیه شریفه آیا در قصاصم قصاص ثابت میشه یا نه قصاص به شهادت یک مرد و دو زن ثابت میشود یا نمیشود در این مثله اصحاب اختلاف کردن در این اختلاف کردن که آیا میشه یا نه بزرگان حتی شیخ کسی تو قول داره در نهای خدمتشون یه قول داره در مبسوط یه قول داره اقبال مختلفی بزن مرهو امام رضوان الله تعالی میفرماد که یه عده از فوقها قائلا به این که خدمت شما سن میشود یه عده قائلا که نمیشود نقص بعضی گفتن که خوب حالا که قصه ثابت نمیشه دیگه چطور با همون شهادت یعنی یک مرد و دو زن میان دقت کنید یک مرد و دو زن میان در رابطه با شخصی شهادت میدهند که این قاتل است قاتل قتل عمدی قتل قتل عمدی یعن. آیا این قتل ثابت میشه و این شهادت یه ادهی نمیشه یه اده میگن خب حالا سوال این است که آیا دیه ثابت میشه یا نه ادهی از فقه ها و فهور من جمعه های طلاح خویی از معاصل میگن دیه ثابت میشه به همون شهادتی که بر اصل قتله و ادهی هم از خودم ها و مرحوم امام میفرماید نخیر به اینجا ندیه ثابت میشه قتل که ثابت نمیشه دیه هم ثابت نمیشه مرحوم امام میفرماید قتل ثابت نمیشه و به شهادت رجل من قتل این قتله هم فایده ندید. دیه هم ثابت نمی‌شه. به انشاءات دیه هم ثابت نمی‌شه. اجازه بدید. بعد من اینجا رو در همون فصلی که بودم یک اونجا که ایشون رسید بحث کردو بساتونی حرفا یک مقاله‌ای نوشتم، یک مطلبی نوشتم. یک مطلبی نوشتم برای ایشون روایات رو بندی کردم بر 5 طایفه و ذکر کردم اینا بساطون حرفا بعد برای ایشون فرستادم. بعد ایشون میخوام بگم با این و بر, بر, بر اساس انقلاب نسبتی که بعضی از بزرگان مثل آیت الله خوی قبول دارن نسبت این روایات چی میشه بر اساس عدم قسمت نسبت چی میشه تعارض روایات مختلفه تعارض داره روایات اینجا اختلاف به خاطر اختلاف روایات بعد این برای ایشون میرسیم ایشون با این همه اشتغالات این حرفا نوشته بنده رو این خط مبارکیشون یه ای هاشید ایندوان رو میدین نسبت ها رو که من ذکر کردم، اونجا بیان کردن یه نکاتی رو ذکر کردن در نسبت ها اینها و اونجا من خدمت شما از ایشون نظر دیگه ای رو انتخاب کرده بودن من نتیجه رو چیز کردم بعد آخر فرمودن که آخر اون عبارت رو من میخونم که دیگه آقا فرمودن که فروغ نکنم زیاد چشم می فرمایدن که من نمیشتم فالنتیجه من نوشته بودم فالنتیجه مازه و الیه الامام الراحل قدس سر من عدم اثبات شیئن في المقام به شهادت النساء للقصاص ولد دیان في شهادت هن على ما يجب القصاص لدلالت الد... ل... بله لدلالت الدلیل على نفی القصاص دید ادلتی دلیلا نفی اثبات یعنی قصاص به وسیله شهادت یک مرد و یک زن نمیشه و عدم دلیل علا اثبات دیه با اینجوری جوری نتیجه ایشون بعد که اتفاقا این رو نوشتم با کتب فیوم میلاد حجت حجت الحسن در همین روز میلاد حالا سالش متاسفانه نمیشتم روز حجت میلاد حضرت نمیشه بودم بعد برای ایشون فرستادم ایشون بعد این به خط مبارکشون نوشتم بله نتیجه هي ثبوت به شهادت هن في القتل سواء كان عمديا او خطائيا وذلك لتقييد روايه جميل الدال على جواز شهادت هن مطلقا بروايه قياس رياس بن نافع ثبوت القتل بذلك فيبقى ثبوت الديه في العمد بل تحت الاطلاق التماس میخوام بگم که یک انسان با اون همه کار و زحمت و فعالیتی که خدمت شما به دوش میکشه و رهبری جامعه و به خاطر این حرفا اینقدر حوصله میکنه که به نام، که به نوشته بنده عنایت داره التماس ما بودید و اشکال میکنه نکته نظرش اینجا مینیویسه التماس نسبت روایات رو بعدم نتیجه رو در عکس اون نتیجه که مثلا فرد من گرفتم نظر مبارک خودشی بیان نتیجه, و... نتیجه رو فرمود که ایشون میگه که خدمت شما عرصه بد که بله اثبات میشه میگه که این نتیجه یه ثبوت دیه ایشون میگه هم مثل ایده از بزرگان میگه به شهادت یک مرد و دو زن دیه ثابت میشه طریقشون میگه که دو اون یکی روایت جمیل خود روایت اینجا هست آقا که نگو حق هم داره با خفه میکنیم مردم رو التفایت با میدید از اینکه حرف میزنید به خاطر روایت جمیل و التفایت روایت بعد که اون روایت مطلق بود اون دلالت شمی گفت تغیید میزد به وسیله روایت قیاس این عبارات رو بعد بیا بنویس بیا آقا جمع. یک کوفیل ببین خب. از جی گوشیت اون که خودت خلاص کن یا عکسی از همی نمیگی فقط از اینجا همین یا سلوک نکنی خب خب من جنبندگی می کنم خدمت شما عرض که خلاصه این مطلب این که من بر اساسی این مسئله ای که می خواستم بیان کنم دقت نظریشون ایشون رو به عنوان یک مشتمونی خربان می‌خواستم بیان کنم در نحوه تدریس و بیانش پایبندی و قانونمندی و پویایی رو برخورداری یعنی هم پایبند به موازین خدمت شما عرض شد هست مو... یعنی که از اون خدمت شما عرض از کلیات شریعت از اصل ثوابت دست بر نداره هم خدمت شما عرض قانونمندی بر اصال زابط عرض بزنه حرفای کیلویی نمیدونم همی جوری خدمت عصارت العداله نمیدونم چی چی حرفایی که بعضی هست و و حرفایی که روشن فکری میخوان بزنن بساطون و پویایی هم داره یعنی به روز فقه فقهش فقه پویاست و به روزه و قابل انطباق است و در نوش... منعکس هم هست در ابحاث مکاسب محرمه ایشون در اما ابحاث جهاد ایشون در ابحاث خدمت چون صلوات مسافر ایشون در خدمت شما عرشبت در جنبه های بحث های ایشون در بحث های ایشون در بحث های تاریخیه که 250 ساله هست در, در خدمت شما عرشبت خب امتیاز ایشون چیه؟ امتیاز مهمی داره که واقعا باید ما شاکر بشیم خطردان بشیم که ایشون یک فقیهیه که متصدیه یعنی یک فقیه خوشزوق خدمت شما عرشبت مسلم الفقاهه که متصدی امور اداره مملکتم هست که این با اون جامعیت حساب یه, وقت، یه وقت هست که خدمت شما عرصمد که من جامعیت فقه اسلامی را در قالب یک تئوری میفهمم یک وقت در قابل، قالب یک عمل التباط ما لمس می کنم. این یک امتیازی که ما باید خدا رو شاکر باشیم و قدر بدونیم خداوند سایه و رو مستدام بداره این یک نکته و در جهاد تبینم که چون تاکید کردن من نکاتی بود که ارتباط داره ولی دیگه نمیتونم بگم حالا بفرمایید اگر سوال من دیگه حرف نمیزنم چش سوال باشه رسیده این بحث اون اگر نرسیده در حد یک سوال بحث بگن، هر کی سوال داره بگه. کتاب شرایع بود، التواء امید بعد در شرایع، بعد در چیز در صلات مسافر خدمت شما هر چه که چیز بود، اوربه بود. الانم بعد قبل از کرونا صلات مسافر هم شد نماز جمعه رو شروع کردیم درو دیدم نماز جماعت اون بود خدمت شما عرضمات که اون بحث مفصلی علام الغننام آیا حرمتش ذاتیه حرمتش اعزیه رضوانمودی بالاخره درکی دار چاپ شده این کتابه که چاپ شده دو, دو جلد کتابه بله دو جلد کامله انشاءالا چاپ کنم اسسه خود به قلمش بای عربی نویشتم خیلی غالی <coughs> بنابرای چاپ بشه تا <coughs> الان چاپ نکن. بفرمیم خب من یک،, من یک نصیحتی بچه ها آقایون بچه ها که خودم بچم. شما آقای سرمه رو بندست. یکی این که خدمت شما عرصه که این جهاد تبینی که آقا فرمودن ببینید وظیفه اولیه خدمت شما عرض شود که علماء اعتماد که جانشینه و رسط هستن این تبلیغ. و ما علی رسول علا بلاغ المبین و در رابطه با تبلیغ هم خودتون با مستحذر هستید که در رابطه با تبلیغ خب همون که پیغنبر ما که الگوی ما سو لکن کان لکن فی رسول الله عصفتون حسنه متحمل مشقات های زیادی شدن و می شدن پیغنبر خدا شدن و, و این دینم با آسونی در طول تاریخ و دست ما نرسید نتیجه مشقات هایی که اولیاء خدا بزرگان علما خدمت شما از قطع تفعید و الان هم خب این زمینه هست ولی اون که حکومت جمهوری اسلامی و خ... برکاتش هست ولی خب اون دشمنی ها و اینایی که میدونید از من بیشتر برابتان میدونه و اینها ما رو از پا نوبری دربیلی اما ته ما یه نکته و هم از میکنم در زمین و پی... یه یکی نکته قصه کوچولو میگم یه صلوات بگید ابن نادر بابا جون یادتام خ... ب... بیرونم خبری نیست اینجا هم خبری نیست اما بیرون خبری نیست صلوات بفرستی الله شما در تاریخ مراجعه کنید پیغمبر خدا صلی اللہ علیه بعد از که شعب عبی طالب تمام شد و اون مسیبت ها و این ها آزاد شدن رفتن به طرف طائف نشستن رفتن به طرف طائف که تبلیخ کنن در طائف شدید در تاریخ خوندی دیگه رفتن تاریخ ت... اونجا تحلیل نگرفتن پیغمبر خدا بعد اون بزرگان خوریش و اون کفار و اینها طائف خدمت شما عشان ها وادار کردن پیغمبر رو دیوانه و مجانین اونات که سنگ بزنن اهانت کنن و ساعتی هر بار اهانت کردن پیغمبر داره حالا مختلف یا 6 ماه موندن سه ماه موندن سه روز موندن مدتش مهمی ده روز موندن مدتش حالا محل خلافی که در طائف موندن هیچ از از حضرت پذیرایی نکردن هیچی اینجوری هم از چیز کردن سنگ باران کردن از تو خسته مونده و آمدن خارج اون شهر که مثلا خارج میشن ظاهرا زیر یه درختی نشستن زیر درخت نشستن زیر درخت نشستن, نشستن که همچین استراحت کنن خسته خوناولود و بسات می در تاریخ. بعد اون خدمت شما ارتشبدی که اصلا این کفار کفار طائف و این سران چیز دلش سوخت به حال پیغمبر گفت اون خادمش که برو یه مقدار انگوری چیزی ببر این برای این شخص که زیر درخت نشستید اون رف اونجا این انگور رو برد اونجا گذاشت و خدمت شما هر چه بود که حضرت ما اومدان انگور رو که بخورن شروع بکنن نام خدا رو ذکر کردن به نام خدا. اون قلام اون خادم پرسید که این چیه؟ ازتون که از شهر دادن و وسات اون این حرف وا خلاصه همون اونجا اون ایمان اومد همون خادم ایمان برد. همون عبد ایمان و عدادش بود اسمش عدادش بود همون ایمان. الوازومی مسیحی بود ظاهرات بعد ایمان آورده عبدی بود اونجا خب پیغمبر خدا گفتن که با اثر ایمان آوردن همین عداسی یک نفر گفتن این سفر سفر موافقیت آمیز بود سفری که در اون سنگ بارانش کردن خونالود شده التفاد بودید؟ این همه مصیبت کشیده اولا به تو نکته هنوز از گرفتاری های بر در نیمده کارشون رو ادامه دادن کارشون رو ادامه دادن بعدم با این مصیبت یه نفر هدایت شده گفتن سفر موفقیت اومیز بود ها بوده. خب این مقدمه این شد و یدخلون فی دین الله عفواجا دیگه که دسته دسته وارد دین و خدا شدن دو این همه این همه آوازها از استفاده بود خب میخوام بگم که این بگو پیغمبر الگوی ما است این مسئله بسیار ساده ما ما علی رسول اله و وظیفه اصلی ما تبلیغ است و تبین شریعت است و تبین خدمات نظام ماست و تبین حقائق است و تبین خیانت ها و نقشهای دشمن است البته خب در این وضعیت اقتصادی و این مز... مشکلات که است حتما مجتمع به اون صورت نیست حتما پذیرش به اون صورت نیست این هم باید درک کنیم حتما به اون صورت نیست ولی ما باید وظیفه خودمون را انجام بدیم در حد امکان آه. و همینجا من یک نکته هم به آقایون مسئولین دستن در کار چیز عرض میکنم یکی در رابطه با مبلغین یکی در رابطه با مردم بابا این مبلغی که میفرستید درسته این مبلغ به خدمت شما وظیفش انجام میده خب انجام میده وظیفشو شما باید وظیفتون انجام میده نسبت به این مبلغین با این گرونی و بساطی این حال یا, یا آقایی رفت خدمت شما عرشبت منبر میرفت یا کوردهی منبر ر ا، ال دوامو دی اونجا دارون دو ممبرگو فک اول گفت ما برای رضای خدا آمدیم وظیفمون رو انجام دادیم بساط ساتین حرفا و اینا خلاصه ما به تمعی چیزی نی آمدیم خب اونها این در نش بیچاره رب ممبرندن بساط ساتین حرفا هیچ چی بهش ندادن بعد روز آخرام بعد یه ممبری دیگه رب اضافی بعد گفت خب ما وظیفمون رو انجام دادیم برای رضای خدا شما هم نمیخواید وظیفتون انجام بدید خب شما وظیفتون باید انجام بدید بیچاره این طلبها میرن دست خالی بر نمیگردن نمیدونم ساعتون این حرفا باید به با این گرانی و مشققتون این حرفا کمک کنید چیز کنید به علاوه از هر جایی مرج ما نمیدونم از کجا میخاید بیارید بیارید به علاوه های ما رو باید راه این یک نکته نکته دیگه آیون حضرات آیین خطاب با آقایون مسئولینه آیون درسته ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم طلبها انجام بدن سربازی خودشون رو باید انجام بدن جهاد تبلین رو آقا فرمودند، خدا فرموده، پیغمبر فرموده، وزیفه است، التفاد نموده آقا هم که فرمودند امر ارشادی، ارشاده به حکم عقل است و به حکم اونچرا که عقل حکم میکنه خب، شما این زمینه پذیرش تبلیغ را برای این ملتی که خورده ای سال پای شما استاده، پای انقلاب استاده، پای نظام استاده باید وزیفه رو انجام بدید دیگه درسته یک سری خواسته های مردم خواسته های فودون طلبی هم هست بله قبول دارم اما خب یه سری چیزام حقه یعنی یه جوری باشه که ما بتونیم وقتی که یه طلبه یا آقایی در دانشگاه در جای دیگه اگر بره زمینش ایجاد بشه یا با, با مردم صحبت کنه بتونه دفاع کنه بتونه دفاع کنه متاسفانه خدمات زیادی در این نظام شده لا, تو عد لا منطقه هایی وقتا بعضی از حرکات که درست زمینش هم دشمن از او داره سو استفاده میکنه زمین جوری میشه که اون خدمات زیر پوشش بره اون خدمات ندیده گفتیم اون گوینده زبانش الکن بشه گوینده نتواند از حق دفاع کنه ناتوانه نمیگم بعد مثلا یکی از چیزهایی هایی که من گلگی هم کردم این چه اخلاقی که خدمت شما عرض که هر مسئولی میاد مسئول دیگری رو ماسبق رو درست حالا همه علیه السلام نیستن هی بگیم این دوزه اون دوزه این دوزه بعدم که همه دوزه دوزی بعد این میشه نتیجه چی میشه دیگه این اتهام زنی این که خدمت شما عرض که این خدمت, خدمت تا جایی که میشه نمیگم البته نگیرن خائن رو نگیرن خواهین رو مجازت اما اینکه که و کرنا کردن و هی نمیدونم خدمت شما عرض شد که هی این رو توی کوچه بازاری کردن نتیجه کوچه بازاری سقوط و اعتبار نظامه سقوط و اعتبار مسئولینه سلب اعتماد مردمه و این بزرگترین سرمایه ایست که دست میره این باید حوال سون باشه باشید و این مسئله گراهنی رو باید علاج میکنند بالاخره یه جوری درست آقایون میرند تفعیم میکنند راجی میکنند مردم هم وزیفه خودشون با تمام گرفتاریا ها در بیستوی بهمن آمدن در خضیه سیده ی آبان آمدن باز هم میان انشاءالله تعالی ام، اما من تجربه کردم تجربه کردم، ها نوان هر وقت مردم آمدن وظیفه خودشون انجام کرد بعد بلا فاصله بعد از یک زمان کوتاهی پشت دست مذهب داغ کردن یا بنزین گرون کردن. یا, چیچی گرون کردن یا چیزی چی می‌کردند یا نمیدونم اینجور بله دشمن هست نمیگم بابا جنگ اقتصادی جنگه خب این جنگ همونطور که در جنگ نظامی ادو و اده میخواد نمیدونم پیش خرابور می‌خواد نمیدونم که چی می‌خواد اینا این هم همینطوره خیلی خب این آیون و طلاب سربازان نظام هستند برای تبلیغ برای تبیین جاد تبیین نقشه های دشمن رو بیان میکنن وظیفه‌شونه التماد عمومی مردم رو با آرامش شد صبر و قناعت و انسانیت و نمیدونم قدردانی و شکرگزاری ها و تذکر به نعمت‌های فراوانی که این نظام داشته نقش رهبری خدمت شما ارج می‌ذارم دشمن همین اینا رو منم اما بالاخره اگه بخواد پذیر باشه و اثر مناسب بذاره و زمینه یه چیز باشه و خیلی چیزایی که خدمت شما یه یه چیز بعضی اموری که از دست رفته دوباره برگرده التفادمون اعتماده خیلی مهمه این نیاز به یک حرکتی داره شما باید ریش به بونید اون آقایو نمیگم شما باید ریش به جمع بونید کار خودتونه انجام بدید این هم این نصیحت به یک نکته دیگه که الله در آخر ما اولاً الله یک دعای میخونیم که خدمت شما آرشد که الله عظم البلا و برحق الخفاء و انکشاف العطاء و ضاوقت السماء وانت المستعان لم استعان می ایک المشتق في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد و آل محمد وللأمر الذين فرست علینا طوعتهم وعرفتنا وبذلك منزلتهم ففرج عنا و بحق فرج عاجلا قريبا كلام البسات أو هو اقرب یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد کافیان ناصران یا صاحب الزمان الأمان، الأمان، العجل العجل و این آیه شریفه نه آیه شریفه این دعا به این نام بخاطر این بهانه که تذکر بدم چون یه این رو به عین اینکه میخونن خونن غلطه ظاهرا غلطه اختباس این آ... این دعا اختباس از از آیه است و در هیچ جای ادعیه ائمه به این نحوی که ا... اما یجیب الم این نیست یا من یجیب المظفر از دعا و یک شو بشو. یا من خطاب یا در ها است، دعا ها هست، دعا همین هست، این غلطه که می یا اینجوری بخونید، تصیحش کنید یا من یجیب المستر از دعا و یک شب سو یا من بخونید، با هم بخونیم اینو، یا من یجیب المستر از دعا و یک شب و سو یا من یجیب المصدر ایلا دعا و یک شو یا من یجیب المصدر ایلا دعا و یک شو پسو انشالله خداوند کشف سو و استرار رو بکنه به حق فرج کنه بر شیعان آل محمد موالین اهل بی و ملت ایران شیعه، سنی، التفاق ممودی، ساره، ادیان و مذاهب به همه کسانی که در این خط زندگی میکنند همه کسانی که علاقمند هستند به خدمت شما عرصد به نظام و بقای جمهوری اسلامی. این یک نکته و می‌خواستم بگم همین رو درش سرچ کنید شما هیچ جا اون نه در یا آمده نه ولیمون تو گفته و یه حتی در شعری که منسوب به حضرت سجاد است همون یا من حالا اون دیگه زمینه شعریه در غیر زمینه شعریا من در دعاها یا من یجتو ما سرچ کنید این دعا رو در جاهای زیادی آمده در بهار جایی بیا یا من جی بول مصفر دادا و یک شنبه غلط نخونن که غلط میکنن چون دعای ملهون میگن مستجاب نمیشه حالا اون نیت افراد اون دعای ملهون یعنی دعای غلط الله کل ها خداوند همه شما رو حفظ کنه مصدد و منصور باشید رهبر معظم انقلاب رو حفظ کنه مصدد و منصور باشه خداوند من از خطا و خطرهای ما بگی. ما رو از خطاها و خطره ها حفظ کنه از خطاهای ما بگذره انبات ما به شما رو غریق رحمت کنه شهدائی ما رو غریق رحمت کنه شهید سلیمانی رو غریق رحمت کنه غریق رحمت است انشالله تعالی همه ی شهدا با حدç عبدالله حسین و اصحاب حسین سلامت الله و سلامه علیه انشالله تعالی و سایه بلند پای مقام عزیل و رحبری و شما اعلام که انشالله زخیری هستید و سرباز هستید شما رو حفظ کنه و ما رو در خدمتگزار شما قرار بده. و الحمد لله اولا و آخر منذرت باشد سلام عليكم. تو بحث فکر اما خواهد آیت برنسی میشه به بعد بد اقبال چون اول اگر اقبال علما را برنسی کنید ذهنیت پیدا میشه آیت نه. آیت نه نه، اقبال نه. ببینن که در زمینه چی چی دارن میگن چی گفتن حالا بخواهیم ببینیم که دیجوریه این،, این گفته ها اینه دلیلش هم اینه کدوم این ها مناسبه